دو خوش آمدگویی به یک که شما باشندگان در تالار آموزشگاه جهانبینی زرتشتیان امید دارم که آوای من در روم باشه داری گرامی آیا, آیا, آیا من در اتاق هست؟ بسیار درودی داریم به یک هایی که شما شنوندگان از رادیوی اینترنتی زرتشتیان که به صورتی 24 ساعته در طول این یک ماه گذشته تلاش داشت با شما هم پیوندی داشته باشد همچنین با شما یاران گرامی که در اتاق پالتاک در تالار آموزشگاه جهانبینی زرتشتیان و با پیگیری موبد عزیز موبد کامران جمشیدی به کار خودش ادامه خواهد داد به نزدیک یک ماه هست همانجور که گفتم تلاش های بیکرانی از سوی گروه های فنی گروه برنامه و همچنین گروه تدارکات انجام گرفته است تا با به امروز به اینجا بکشیم اما از آغاز ماه نوامبر میلادی تلاش برای این هستش که برنامه های متنوعی در این راستا درست شده به اجرا درارد که به صورتی چهار ساعته هر روز و با باز بخش شش دفعه برای اینکه بتوان در چهار گوشه جهان به آن در زمانهای متفاوت گوش داده بشد تهیه شده است و به زودی برای اجرا آماده خواهد شد امید داریم که همچنین که امروزه با ما پیگیرانه در رابطه با هم آموزشگاه و هم رادیو همکاری داشتید در آینده نزدیک هم این همکاری گستردهتر و پیوسته باشد از موقع گرامی خواهش میکنیم که گویانه را بگیرند و برنامه را آغاز خواهیم کرد با درود به شما خوشنوگی احرام ازدار خداوند جان و خرد و با درود همیشگی بر روان و فره به هر اشوزتوش رسپن این بزرگ وشور و آموزگار زمان ها و با درودی دوباره و گرم و گرمتر بر همه شما گرامیان همیهنان هم همکیشان دانشتویان و دانشپژوهانی که چه در این تادار گرد می آین هرفته و چه کسانی که از راه راژیو زرتشتی ها سپس به این برنامه ها گوش میکنند و در اینجا یک سپاس کزاری بیکران هم داشته باشم برای سامانگران گرامی کسانی که این برنامه رو تهیه دیدن و همچنان پیگیرانه به دنبالش هستند و ما همه کم و بیش من که میدانم که چه چقدر کار میبره چقدر در بزر و چقدر تلاش میخواد و پیگیری میخواد و به راستی که دستتان سبز و همواره تندرست باشید و پیگیر در کارهای خوب و آرمانی خب دوستان امروز شنبه دیگر است که در کنار تون هستم در کنار هم هستیم آبان روزی است از آبان ماه در ساد ۷۵ زار داشتیم پس چیست آبانگان یعنی جشن آبها که اصلا اینجا آبانگان رو به همه شما ش باش و فرخده باد میگم و به حال میدونیم که آب یکی از اون چهار آخشیج سپنتایی یعنی چی؟ آب و باد و آتش و خاک که همه ما و همه هستیداران از این چهار انصر بنیادین چهار آخشیج بنیادین در واقع درست شدیم که گرامی داشت اونها یعنی گرامی داشت خودمون و گرامی داشت زندگی و پاکیز نگه داشتن و پارود نگه داشتن اونها یعنی پاکیزگی و در واقع ادامه زندگی خودم در نیایش های سرتشتی این عوستایی داریم نیایشی داریم که از جمعه برای آب و آب خونده میشه که در بخشی از اون چنین آمده است درود و ستایش و سوالو آفرین باد بر همه آبهای نیک مزداداده و بر همه گیاهان نیک مزداداده و بر همه فر و که پیروز و نیرومند هستند می ستاییم آب ارد بیسورانهیتا را که به همه سو گسترده تندرستی بخش و شایسته نیایش و ستایش هست عشق به هو و هشتم هستی هستی اوشتا احمایی یدشایی و هشتایی هشم خب دوستان برای این نشست برای هستند که در دنباله گفتگوی که بود و از اونجا که این پرسش کما بیش همیشه میشه و برای که دوباره پاسخی هم بدین گونه داده شده باشه به این پرسشا دنبال میکنیم گفتگوی پیام پاترو، رو اونجوزور رو و یک گزارشی و توضیحی میخوام بدم در مورد اون که انسان از دید مصدی اصنا از دید دین بهی از چه بخش ها و نیروهایی تشکیل شده که اگه به این واژه ها و مفهوم ها برخوردیم در جایی بر روی در موردشون آگاهی بیشتر داشته باشیم نخستید رو گفته باشم که بر روی پدران ما در هر دورهی با توجه به زبان و فرهنگ زمان خودشون و همچنین دانش دین و همچنین دانش روز از این مقوله به شکلی گونه گونه گفته بود داشته و امروز هم که ما در مورد انسان شناسی به طور کلی گفتگو می‌کنیم میتونیم با توجه به دانش روز هم بر اونها نوری بیافت کنیم تا بهتر اونها رو بشناسیم اما لخصوصastype گاه به هر روی خودمون آغاز می‌کنیم ببینید همیشه گفته میشه نوشته میشه که انسان از سه بخش به هم آمده تشکیل شده که میگوییم تن جان و روان. معلومه که تن و جان که البته دیگه روشن است ولی قبل توضیح کوچکی هم بدن که تن یا بدن یا کالبد به هر نامی که می نماییم در تن وو گفته میشه و از همه اندام های بدن ما تشکیل شده من منهای در واقع نیروی زیست یا همون و خب گفتگوه هم پیداست که پس از فرارسته پایان در واقع زندگانی این تن اون به این تن خب این تن از بین میره و به خودی خودش نیروی نداره و جنبشی هم ازش ساخته نیست تن رو میشه مانند ابزاری درست به وسیله روان در واقع میتونه به زندگی دنیای خودش ادامه بده اما تن انسان در انسان زنده در دین بهی دارای اهمیت و ارزش زیادی است و از اونجا که تن و روان مانند درو یک سگ یا بهتر بگیم به در هم تنیده هستند درستی و سلامتی یکی با دیگری در یک پیوند تنگاتنگی وجود دارد و از این رو برای نگاهداری و پرورش تن هم مانند روان سفارش شده و گوشتر شده. بعد جان رو داریم. جان هم به وستایی بهش میگن اخو یا به پهلوی اخو. خب نیرویست که تن رو به جنبش و کار رو داره. این هوایی که به درون میدنید و خوراکی که میخورید. با به هم آمیختن و سخت و ساسای خودش در بدن سبب برپایی اون نیروی جنبش میشه که اون رو جان میرم و خب اگر اندامه های بدن و در پایان قلب هم از پایان بیفته دیگه این نیرو هم از بین میرم از این نیرو در روستا با نام آتش زندگی در چمه نیروی زندگی هم یاد شده از تن و جان که بگذاریم میرسیم به محبوم روان که حال همجه در موجودش پرسش است روان یا به عبستای اروان خب این یک نامگذاری کلی است میشه گفت برای اون بخشی از انسان که از تن و جان جداست و بخش میننمی انسان به شما میاد که این بخشی که با سخگوی اندیشه و گفتار و کردار است خود این واژه واجه روان یا اروان رو میشه به دو مانا کرد یکی که اون رو از ریشه ور میدانیم ور که گفتیم در واجه های باور و فروهر و هم در چم دوزینش و انتخاب است پس به دینگونه اروان یا روان همون نیروی تمیز و گذینش و انتخاب در زندگی است دیگر این که این, این واژه رو میشه از یه ریشه دیگه هم دونست ریشه در واقع اوستایش است و خب به چم رویش، رشد افزایش بارش که واژه اروور که به چمه گیاه و رستنی هم هست از اونجا هم پس از این دیدگاه روان در چمه آن چیزی هستش که همواره در رستن و رویش و اقضایش و بالایش و رواندگی و روانگیست و میشه گفت که ایستا و نیست تو جا بودانیست این روان هست روی همیز از آن چه که ما خودمون داریم برای آگاه یافتن و گزینش هامون در زندگانی و سرانجام هم پس از پایان هستی مادی و گیتری گیتری تن و از میان رفتن جان این روان هست که به جای میماند و رویشو بادشو روانگی خود رو در واقع در پیمید فلسفه یه زد دوشتی نیروهایی که روان رو تشکیل میدند به دین گونه نامگذاری کرده ما از چهار یا تا نیرو در اینجا نام میبریم یکی هست منه دونی هست دین یا همون دعنه سرمی هست بعوذر یا همون بودا یا بوی و بو هم شده است چارمی هست سروش یا سروش و سرانجام فرابهر یا فرابشی براساس این فلسفه در این در هماهنگی و همپرسی در واقع این نیروه هاست که انسان میتونه به بینش و دریافت و فهم و در گاگاهی برسه اگه بخوایم به سادگی مفهوم این نیروهای درونی رو بیان کنیم که هم کسانی رو که شاید آشنایی از پیش هم ندارن رو بیشتر از این دیج نکنم و اگر شما با کمی دانش روانشناسی روز همه آشنایی داشته باشید به اینها میشه گفت اون نهاد یا زمین خداگاه و ناخداگاه با هم که بخش خداگاه اون بخشیه که ما از راه تجربه هامون آزمون هامون در زندگانی آموزش هایی که میبینیم و به زبان دیگه از بیرون بهش دستجاسی پیدا می‌کنیم. بخش ناخودآگاه، اون بخشی که از درون به ما آگاهی میده خب پونچه که از بیرون میاد در زبان مزدی اصنای و بهش میگیم گوش و سرود خردی اونهایی که اینها رو خوندن از دو گونه خرد در اینجا گفتگون میشه، یکی گوش و سرود خردی و یکی هم بعدا میگم آسن خردی گوش و سرود یعنی, چی؟ یعنی اون سرودی که به گوش شنیده میشه یا گویی که شنیده میشه یا اون دانشی که از بیرون میاد این یه بخشی از اون منع ماست منع میشه گفت به کودای گفت من جایگاه خرد هست جایگاه منطق است و وقو منه پس اون اون ذهنی است که به خرد باشه یعنی چی یعنی گذین شای خود رو بر مبنای نیکی و بهی و سازندگی انجام بده پس داریم منه یا خرد یکی از گوش و سرود خردی بخش دیگه رو بهش میگن آسان خردی تو باخی میگن آس نخردی. ولی آسانه. این واژه آس یعنی ریشه گوهر ذات بون. همین از همین واژه آس میاد. از همین واژه اساس میاد. این اساس دو تا آس دو تا آس آس به انچاس جدا. یعنی نیلوان مینو یا اگه بخوام میگم همون ریشه و گوهر ذات. و پس آسن خرد یعنی خرد ذاتی و گوهری و ریشهی یا به زبان دیگر همان ندا و آوای درونه که به اون همچنین گفته میشه سرعوشه یا سروش باز به گفتهی دیگر آسن خرد یا خرد سروشی نشان پیدایش مستقیم حقیقت از درون هر کسی است یعنی هر کسی وقتی که ما به در جستجوی حقیقت هستیم در جستجوی هستیم از درون خود ما ندار میاد و این ندار ما بشنگیم سروبش یا سنخرت که در واقع حقیقت رو از درون خودمون همیشه میفهمیم هر که از بیرون میگیریم باز این درون ماست که ما میگه چی درست است و چی درست نیست و اون گوش و سرود خرد که گفتم یک نبا و سرودی است سرودی رو که از این آسان خرد از این سروش ما برمیخیزه میشنقه میپذیره و از اون حقیقت رو در میابه و همین گوش و سرود خرده که بهش دیم سرچشمی اخلاق و قانون و دادگری واجه دیگری هم اینجا براش میاد که بهش میگن رشد رشد یعنی دادگری از اینجاست که میگیم سروش و رشد باید دست در دست هم رو یعنی خرد اقتصابی خردی که از بیرون میاد و خرد درونی این دو تا با هم دست دست دست هم بدن تا راستی و حیرت پیدا بشه و قانون و دادگری از اون پدید. امیدوارم تا اینجا تونسته باشم منظور رو بیان کنم تا اینجا پس منه رو گفتم و سروش هم که درون من هست در مورد فروهر و فروشی هم بعد سخن گفتیم اینجا میتونم به یه شکل دیگه ای فروهر رو براتون بازگو کنم فروهر اینجوری مالند کنیم مانند یک نور است، نوری اهورایی که بر همه چیز و همه کس اقسان میتابه تا با تابش خود اون هسته و دانه مزدائی خدایی رو که ما در خودمون داریم با این نور برانگیخته بشه و به رشد و گسترش و بالش بندازه تا اینکه ما رو با خودش گسترش بده و به بالانه پس جای پرسش میتونه پیش بیاد که چه میشه که این نور فرابهری اهورایی چرا نمیتونه که در همه کس به درستی و تمامی خودش رو نشون بره و راه درست رو در زندگی همه کس نشون بده که اینجا اون بستگی داره به دین ما به دعناه ما یا همجری بفتیم قبلا به وجدان حالت بیایی اگر این دین یا دعناه یا وجدان رو مانند کنیم به یک شیشه به یک پیستال. که نور بهش میتابه و اگر این کریستال شخاخ باشه روشن باشه بیخش باشه تمامی این نور رو در واقع از خودش رد میکنه و بازتاب میده اما اگر نباشه اما اگر لکه داشته باشه قباری بهش باشه مخشایی از این نور در اون گرفتار میشن نسیدی میشن اون بازتاب نوری که از این کریستال دین یا وجدان ما به بیرون تابیده میشه درست مثل که میفته یه پرده سینما در ذات بگیم یه پرده این پرده ذهن ما است این نور میفته به این پرده و آگاهی به ما میده این آگاهی، این روشنی و این دریافت رو بشت میکیم و اوزا یا بودا یا بوی از اینجا می‌بینیم که این واجه بودا هم یک واجه حبستای ایرانیست و به همان مفهوم دقیقا روشن شدن و فهمیدن درست شد؟ پس نور فرده هر میاد و ما میتابه اگر دعنای ما پاک باشه تمامی نور را از خودش رد میکنه و ما به درت و روشنایی میرسیم حالا چه عواملی سبب میشن که این دین ما این کریستال ما نتونه اون نور اهورایی رو به تمامی بگیره و باستاب بده اونا چه لکه هایی هستن چه خوبار هایی که بر این شیشه بجدان ما مینشینن و نور رو اثیر می خب این بازدارنده ها که میرانگر هم هستن به یک زبان میشه گفت همون بی اندازگی هایی هستن که ما به نام های خشم و کینه و نفرت و تردید و ترس و مانند آنها یاد میکنم همون هایی که پیش راه ما رو برای رسیدن به اون آرامشی که سپنتا آرمیتی مینامی از ما میگیرند خب البته در این مورد ها اگر بخوایم به دانش روز اگر بخوایم بگیم نگاهی بکنیم بدون اینکه بخوام زیاد وارد این مقوله بشم میشه از دو نفر میخوام یاد کنم در زمینه روانشناسی که یکی خب فروید هست و یکی هم کار گوستاو هست است که از با فروید ما داریم به نام من برتر یا سوپر ایگو ایشون میگفتم ایده داریم ایگو داریم و سوپر ایگو که یعنی اگه بخواییم بگیم این ندای درونی که ما ازش کفتگون میکنیم این سروش از کجا میاد هر کسی یک جوری رو برداشت میکنه فروید گفت میکن از من برترمون میاد اون که در واقع یک خود پر خودش و دیگران تکمیل کرد رو فردیو به چیزهایی گر هم می پراززه از چون به به از, از گاهشون ناخودداگاه در واقع دو بخش داره یه بخش شخصی داره یه بخش گروهی یا جمعی داره که در اون بخش جمعیش یا گروهیش از یک سری الگوهای کوخن یا های رفتار یه کواهن یاد میشه خب میگم هر کسی اومده اینو یک جور بررسی کرده از دیدگاه ما این سروش است به این سروش از آسم خررد میاد همون آسم خررد است و از از ریشه میاد از, از در واقع از آغاز آفلین نش که بهخوایمو بذارری میاد به هر حال از درون میاد و این برای رسیدن به این به شنیدن این آ چاره ای نیست جز این که اون به یک آرامشی ما بتونیم درون خودمون رو برسونیم تا در واقع در درون اون آرامش بتونیم ما این صدار دریابی این آوار بشنیم در مورد آرامش بیشتر سخنگ با هم گفت و برای که در واقع نبرم چیزی رو که اگر آغاز بکنم درست را زیاد نگذشته 25 دقیقه گذشته ولی اگر امکان داره که یک موزیکی همینجا پخش بکنید با سپاس بسیار هم زیبا و از گاه های نیایش این موسیقی گفتگو کرد و گاه ها رو نام برد و بسیار هم زیبا خب امروز سخن از به گونه ای آرامش هست البته این رو بگم که وقتی که از آرامش گفتگونو کنیم آرامش است، افسارینده آرامشی که با خودش یعنی هیچگاه نمیشه هیچ چیز رو ثابت نگه داشت و ایستا بلکه همیشه در جنبش و در است. ما به راستی باید اینجوری گفت که اگر هر کدوم از ما چه تک تک چه گروهی حالا من هر کدوم نگاه میکنم برای که گروه هم از تک تک ماده دوست شده برای اینکه که بتانیم چه در زندگی شخصی خودم و چه در کارهای گروهی اجتماعی حازمانی های کارها میخواد در چارچوب کار انجمنی باشه در چارچوب کار فرهنگی باشه در چارچوب حتی کار سیاسی باشه انسان هایی که در خودشون نرسیده باشند به وقتی میگیم آرامش آرامش ها آره را بدن تعریف میکنم باز نمید میگم باید به اونجا رسیده باشیم به یک کمینه ای از آن چه که ما به انتحار میگیم رسیده باشیم تا این که بتونیم بیایم و در واقع کار بزرگتر بکنیم کار اجتماعی بکنیم چرا برای این که بتونیم در کار گروهی هم کامیاب بشیم باید کمینه ای از این ویژگی ها رو بهش رسیده باشیم اگر نه دیری یا زود در یه جای کار کار خراب بشیم آرامش یعنی یک رنگی یگانگی همه هنگی در اندازه های درست بودن حال چه درونی و چه بیرونی انگامی که می‌گیم آرامش درونی از آرامش فردی گفته بود میکنیم یا تکی و زمانی که می‌گیم بیرونی از آرامش همگانی یا گروهی نگاه کنیم این منظور من این از آرامش فردی یا تکی چیه؟ خب دونستیم که پیش درآمد آرامش و هنجار یا همین سپنتارمتی که میگم رسیدن به چی بود؟ آن چیزی که بهش بشم گفتیم را یا شهریاری خشترا یا شهریاری خب اینا رو توضیح دادم که میتونه چمها و ماناهای گوناگونی بگیره بستگی داره که در کجا در چه قده و در چه سرکی در چه پیوندی در برون گفته کن کنیم در این پیوند خشترار میتونیم بگیم همون شخیاری بر خیشتر چیرگی بر خود و بر حالا هواهای نفسانی اگه بخواییم بگیم یا بر اون خواسته های بیش بر آز و نیاز و بر دیگر بیرون از اندازه بودن ها پنهار راه رسیدن به سرچشمی دانش و راستی و فهم درست از زندگانی یا همون بودهایی که ازش کرتگو کردیم، رسیدن به آرامشی است که در سایه اون راه رسیدن به نور و روشنایی هموار بشه و اگر به گاته ها بیشتر توجه کنیم ببینیم که این همون راهی بود که خودش رو زرتشت و مان آموزگار رفت و به رسید و ایشون هم همین سرچشمه نور و دهانش راستید در درازای تاریخ انسانی اندیشه ها و اندیشمندان بیشماری با همین هدف و همین آرمان یعنی رسیدن به آرامش راه های گناگونی رو آزمایش کردند و به پیروان خودشون سفارش کرد. در پایه تمامی این دیدگاهها و ها و همچنین روانشناسی نوین مهمترین ابزار وسیله انسان برای رسیدن به این آرمان تمرکز اندیشه است و آگاهی و یک بودن راستینی در تمامی عرصههای زندگان از پندار و گمان و توهم و خیال پردازی اینا حقیقتی به دست نمیاد بلکه با تمرکز کردن و دیدن خطنها نگاه کردن بلکه دیدن و البته با تجربه و آزمون و فراگیریست و روی همه اینها که آستاسی میتوید به رسید و از جلده از شناختهایی که به دست میره انسان با ابزار سوهشی یا حسی و احساسی بدن خودش با میشه چرا اینو میگم؟ برای که یکی از عواملی که باعث میشه آرامش درونی به هم بخوره و در واقع تضادهای درونی اون همیستارهای درونی به وجود بیاد یه هم دلیلشه هم پیامدشه که اون به صورت یک سری احساسها و صغش ها که ویرانگر هستن در واقع بروز میکنه در ما حالا به شکل های هر که نشون میده خشب ها گفته دیگری از ها همین های که نام میبرم ترس ها تردید ها برای که اینا جز به در واقع قوی ترین این احساس ها هستند و وقتی بیرون بزنن حالا هر جایی که باشه در هر پیوندی در نظر بگیریم اون،, اون پیبند یه جا خسارت میبینه یه جا آزار میبینه به گونه ای حالا چه با, با خودمون باشه چه با پیرامونیانمون و نزدیکانمون از پس یکی از بنیادی ترین میشه که می‌تونم بگم افزارهایی که دسترسی پیدا کنیم به این تمکز فکری اون تمرین بینش درونی هست یا اون شدی که بهش میگن مدیتیشن حالا. البته ما در گاته ها از روزر به شیره دیگری این رو گفته با واجگانی توشنا معیتی توشنا معیتی یعنی میشه گفتش که اندیش جرف اندیشی در سکوت خب این رو مخیل میکنم که هر کسی می‌تونه در زندگی خودش این تجربه کرده یا میکنه که به هر روی در شروعی و سرسده خب اگر آدم تنبین داشته باشه در, در انگام شلوغی هم میتونه تمرکز داشته باشه ولی اگر نه در آرامش و در سکوت نشستن و تنبین در درونی کردن به انسان کمک میکنه حالا ببته ما ها را هم داریم که نیایش ها ابزارهای دیگری هستند برای تمرکز تمکز و در اختن به آرامش که داره ویژگی های دیگری همه هستند که بعدا از آرام... نیایش بیشتر کفته بکارید پس از راه های که ما خودمون رو برسونیم به آرامش درونیمون روی گفتم مهملتر از همه و از سر که اون تضادهای درونیمون رو بتونیم از بین ببریم. بس پس می به آرامش گروهی. خب بینگم که میدونیم که انسان انسان نمیتونه در تنهایی به سر ببره. به روی انسان اون گروهی زندگی می کنیم. به این به عنوان یک... حالا بهتین وزار تشتی هم انسان باید به گروه کمک کنه انسان باید اجتماعی زمینی کنه همونطور نخوص خود خانواده و گروه اینا همه در دست هم, دست در دست هم داره جدا نیست این رو من باید اینجا یک یادآوری آوری بکنم یک روزدی، حالا اسمش رو بذاریم من در جای نیستم که بخوام پنده هم در درست بدن ولی به هر روی از دیدن و آزمون زندگی ها چه شخصی و چه زندگی های دیگران آدم آندم به هر روی به یک, به یک تجربه هایی میرسه میدانم میبینم هستند و بودند و خواهند بود کسانی که برای کار گروهی و کار اجتماعی باعث میشه که زندگی های خانوادگی خود رو گاهی به هم بگیزند و در به این بین این مسئله نمیشن ولی میخوام ب... اینو بگم که خب به انسان وقتی که خانواده داره و در واقع پیمانی بسته با کسی دیگری که با هم همسر هستند و همزی هستند خب در درجه اول نسبت به همزی خودش و همسر خودش پیمان داره و باید پیمان‌ها رو نگه داره و چه بهتر که اگر هم میخواد کار اجتماعی و کار گروهی بکنه با خوشنودی در واقع همسر و همزی خودش باشه برنابراین این ها رو اصلا جدا ندونیم و این همه در پیوند با هم هستن به هر روی آرامش هنگانی است که چسانی بتونن به هم بپیبردن که آرامشی از درون هم داشته باشن بگونه ای و به هم کمک کنن بگونه ای که این آرامش به دست بیاد. و سپس خب در هر اجتماعی هم منوان یک انسان نیک که هرا ما بهدین نامیم اینجا نیک اندیش و برای ساختن جامعه خودشون دسته دسته هم بذارن با برخورت های آگاهان منطقی با پدیده های اجتماعی و به کمک دانش با هم یک سیستم پیشبرنده اجتماعی رو برگذینند و انسان های عشایی و شایسته رو برای پیش بردون به کار بگیرند. این همونی که با دارم گفتن بهش میگیم وحو خشتر و ایریو یعنی شهریاری یا سامان نیک برگذیدنی و به هر یکی از ابزارهای خوب و کارا برای وجود رو و نگاهداری آرامش در اجتماع و ایجاد احساس یگانگی و همپیوند بودن انسان ها با دیگر خب وجود هاین ها و مراسم خوب و سوتمند و یگانگی هم دو شادی آفرینه که خوشبختانه ما در فرهنگیمون و دعینامون بسیار داریم و چه بهتر که به نیکی از اینها بهره ببریم و خب وقتی هم پاشتوی افته نیایش گروهی و چه خوب که پشه نیایشگاه هایی و آتشگاه هایی در جاهای گناه بودن به شما رو بیاد دونوان مراکزی که بتونه انسان‌ها رو گرد هم بیاره و در اونجا با هم به هر رو نیایش کنن و این آرامش گروهی رو تجربه بکنند خود دستان از این بخش هم گفتیم یک بخش دیگر هم من برای که زمان داریم بهش میپردازم و سپس به پرسش پاسخ میپردازیم تا ببینیم که برای با آینده در چه مورد گفته بکنیم یه بخشی هست به نام شایست و ناشایست که در اون نوشته هم آمده خب از این من میتونم آغاز بکنم بعد از این به های دیگر میپردازیم برای بارهای یعنی. های خب یکی از چیزهایی که از, از دینها به طور کلی پرسیده میشه اینه که قوانینی وجود داره چه،, چه کار باید کرد چه کار نباید کرد کن و نکن نداریم کسی دستور و فرمان نمیده مگر این که در یک سیستمی که حالا اون سیستم چه اجتماعی باشه چه سیاسی باشه یه هر چیست شو بذاریم باخاست و و نگرش درست خود انسان ها یک سیستم وجود اومده باشه که در اونم سرسای باشه اصلا این با اون مسئله دیگر است از دید دینی ما میتونیم بگیم که یک سری شایست ناشایست ما میتونیم پندوان بکنیم که اون رو هم بر اساس تجربه و آزمون در واقع در دراز زمان و در دهه ها و صده ها که پدران ما مادران ما نیاکانمون روی این زمین زندگی کردن با این دیدگاه زندگی کردن و آزمون های دیدن تجربه های دیدن اه و اه به هر روی اونها یک سفارش های رو کردن در فرقی ما حالا درست و نادرست اگه بخوایم بگیم پندان درس همیشه است پند میدن پندنامه ها ما داریم از اونسان هایی که به هر روی ادیدکاه خودشون تجربه های کردن پیش که به اون بفرازم من در اینجا از یک، یکی از به اون نرشمندان دین زرتوشتی از یکی از این کتاب هایی که ایشون نوشتم چون در این نوشتار اومده اینو میخونم و البته دیدگاه خب خیلی از ما هست که ایشون میگوین در دین زرتوشت امریا نه حالبا کلیست و نه موردی دستور رعایت سلامت و بهداشت تن و روان است مسائل موردی مثل روزه گرفتن از طرو تا حروب آفتاب که از بغاز عملی در بعضی نقاط جغرافیایی مانند قطب شمال یا جنوبی ایجاد اشکار می در دین زرتشتی نیست در این حال سنت زرتشتی بر این است که زرتشتیان در ماه دست کم چهار روز گوش نمیخورند بعضی هم اساساً سبزی خارن. این خوبی دین است همانگونه که می‌دانیم روزه گرفتن از طلوع تا غروب آفتاب در نقاط مثل به شمال یا جنوب ایجاد اشکال یا الزام به خوردن گوشت حیوانی که به ترتیب خاص ذبح شده باشد ممکن است از لحاظ علمی قابل توجیه نباشد و فقط یک سنت معصوبی باشد در جای دیگر آمده مسئله آدم و هوا در دین زرتشتی جنگی بین طرفداران نظری تکامل و طرفداران نظری خرقت پیش نمی آید. و یا این که در جای دیگر در کتاب مقدس راجع به حقوق زن یا سهم الارث او و فرزندان و مانند اینا احکامی وجود ندارد که عمل برخلاف آنها مغایر دین باشد وفاداری نسبت به حکومت قانونی و داگستر جزء سنت مذهبی است و مسائل مربوط به حکومت پیروان مذهب خاص بر اساس مذاهب پیش نمی آید این قابلیت تطبیق با رعایت اصول کلی دین یکی از اسرار بقای همروهاه است. حفظ گاهنمای ملی و دینی در کشورهای مقیم پیروی از تقویم و تاریخ دولتی و در عین حال داشتن تقویم ملی امکانپذیر است همچنین آموزش زبان و ادب فارسی به جوانان تا آنجا که امکانات اجازه دهد از اسرار بقا و پایداری همبوگای زرتشتی خواهد این را از این که میگم در نمشتار من اومده بود و یک مزارشی هم در این زمینه بدم به هر روی بر اساس دین و سنت هر فرد زرتشتی یک خیشکاری هایی داره که شایسته است که اونها رو به کار ببند از جمله این شایستگی ها اگر بخوایم دسته بندی کنیم خب به طور کلی میشه گفت اندیشه و گفتار گردارنیک یا عشایی و دوری از دروغ ستایش و پرداختن به زیبایی هنر استفاده نکردن از ماده های و با که به اندیشه و خرد آسیب میرسونند و کمتر خوردن گوشت جانوران که میدونید که ما چار روز نبور داریم در ما که گوشت نباید خورده بشه حالا در مورد داستان گوشت و خوراکی ها کلی من در شماره آینده، در گفتگوی آینده بیشتر گفتگو خواهم کرد چون این پرسه شمه من میشه میشه که خب آیا ما به عنوان زرتشتی آیا باید گوش بخوریم یا سمز خور باشیم چیزی که باید گفت و درسته است از, از اصل پایه این است که کشتن و گرفتن جان طور کلی نارواست حالا میخواهد این جان جان جان ور باشد جان انسان باشد یا حتی بخوا میگم جان گیاه اجازه بدید که در شما باز میگم شماره در گفتگوی آینده اه، من اه، به طور کامل در این مورد گفتگو خواهم داشتم پس ما همجایی گفتم یه سری شایست نشایست داریم شاید برخی اینها رو را بخوان نبایست بگویند آن هم جاگاه خودشو دارد برای من واژه شایسته همواره شایسته تره چرا برای این که وقتی ما میگیم شایسته یعنی آنکه ما یه چیزی رو درست تشخیص دادیم شایسته تشکیز دادیم و چون شایسته تشخیص دادیم بنابراین ازش پیروی می کنیم توش منطق هست دانش هست فرهنگ هست همه چی هست بایست وقتی شما یک بخوای کسی رو یا کسانی رو با دستور و نه و بایست نبایست به کاری واداری که خودشون شایسته تشخیص ندن خب این بیگمان به جایی نخواهد رسید. بنابراین ناشایست نشایست به کار میده خب این هم از شایست و ناشایست اکنون شایست هست که ما بپردازیم به پرسش ها و پاسخ ها که یکی از عربین گرامی چند تا پرسش فرستادن که اول به اونا میپردازم و ببینیم که چقدر بر روی زمان دوستی پرسیدن که نیایش ها چگونه میتواند به ما یاری کنند خب در مورد نیایش و نیایش میخوام که بعدن بیشتر گفت بزنم اما اینجوری بگم که خب نیایش چند در واقع هدف اگه دلوقت دلوقت دلوقت دلوقت دلوقت دلوقت من من به شکل درست درام شدید این انجام بشه در هر ا... یکی آن که هدا خوانده خانده شوند که به گونه ای به همون تمرکز ما کمک کنند قبلا رو بگم که هنگامی که نیایش میخوایم بکنیم بهترین حالت نیایش را من, دیگاه من دست کم اینه که پیش از این که ما بخوایم نیایش رو بخانیم یا از روی یک نوشته پیش بریم یا هم چیزی که به در دل داریم بگوییم. خوب است که ما بتونیم شرایطی روی فراهم بیاریم که به گونه ای از آرامش فکری برخوردار بیشیم یعنی اگر تا پیش از اون ما برای نمونه میرون بودیم در کاری بودیم یا به هر روی دورورمون مسالی هست از اونا بتونیم بیایم بیرون در یک جایی گوشهی که ار نظر خودمون شایسته نیایش کردن باشه و پاک باشه اینجا باشیم و حتی میتونیم پنیر ده دقیقه اگر میخواد فقط بشینیم آروم بشینیم چ اون رو ببندیم و تمرکز فکر پیدا بکنیم و سپس میایی ش اون آن چیزی که مفهومشون هست و چ مانا و درون مایشون هست اونها میتونن با یادآوری در واقع آن چیزی که ما بشیم میپذیریم و باور داریم. اونها به ما گوشزد بشه. به خودمون در واقع گوشزد میکنیم و با یادآوری از اونها در واقع یاری میکنیم. به نیت ام بگم دو گونه ما میتونیم کار بکنیم. یکی اندیشه نکردن. یعنی به این معنا که فکر نکردن. فکر و اندیشه برای ما فایده یعنی اون سیستم ذهن و مغز خودمون رو از فکرهای بیخولی در واقع خالی کنیم به یک تمکز فکر و اندیشه برسیم و سپس با گفتن نیایشا ها و اون مفهوم نیایش رو در واقع با خودمون بیاد کنیم این چیزی که دستگرم میتونم بگم که عدید من نیایش میتونن نیگونه ما ریایی کنیم دوست دیگری پرسیدن که تکدیف روان دروج بعد از مرگ در آین دین مهی چیست ادیدگاه سنت و آین دین مهی روانهای دروج نیز سرانجام پس از گذشتن به هر روی از یک مرحله اگه با مستش به دیگر روان ها می پیبردن. یعنی این نیست که روان دروچ هم تا اگر بخوایم بگیم تا همیشه تا عبد در اون حالت بد روانی باقی خواهد مد برکه برای اونها هم این, این امکان و این رسمشو بذاریم شانس وجود داره که پس از به بپیبندن به دیگر روح ها این چیزیست که در آینه یا در دین بهی به طوری وجود داره و حتی در گاته ها به گونه ای از این یاد شده گفتم که رابطه موبدان و مردم بر چه گونه هست؟ و هایا مویدان نیز به دیگر روحانیون نان خود دیل می باشند؟ خب نواید این باشه کسی که این پرسش رو کرده نان خود چی؟ من نمی دارم. برای ما زرتشتی ها دیدم و می دانم و می بینم من نمیتونم از همه به یک گونه نام ببرم اما به طور کلی یک کانون مندی و یک سنت هم هست درون موبدان هم که در جایی که نیاز هست به نیازهای دینی هم پاسخ بدن حالا اگر هر جامعهی بنابرای تشخیص خودش اون ای که جامعه زرداشتیان که در هر جا هستند تشخیص میدن که خب برای برخی شاید خدمات و سرویس ها بخوان به برهاد موبدان اگر حقوقی یا پادشی داده بشه اون به یه مسئله خودشونه با خرد گروهی اون جامعه سرکار داره و اینکه که برحال هم انسان هستند و اونها هم باید زندگیشون درست بگذره و وقتی که زمان خودشون و وقت خودشون رو برای خواست جامعه میذارن خب در برابرشان میتونن حق داشته باشن که پادشی دریافت کنند. ولی خب تا اونجا که به هر روی من از کودکی خودم تا به امروز خب ما مدت آسکردت جامعه مدلی بیرون هستیم یادمه البته خب بودند و هستند کسانی که همیشه این پرسشار رو پیش می و خب با مو بدان هم هست بوده و هست که به شیوه درست با این مسائل برخورد بکنند ولی همواره یک گونه همفهمی و پیوند خوب میان بهتینان و موقدان به گونه ای وجود داشته و در اون فارم که چنین باشه دوست دیگری پرسیدند در مورد آرامش یا نیایش ها گفتید یاد عردی به که از واجه منتره بیش از او نام برده آیا این درست است که موقدان در گذشته با کلام منتره درمان میکردن چیزی مانند یوگا که اکنون مجام شد آری ازشتی یا یا بقیه یعنی اون تندرستی به پردازیم که برنجه پزشکی هم از اون جانیات ما از در واقع پزشکی پزشکی های گناگون داشتیم از کارت پزشکی و اوروار پزشکی یا گیاه پزشکی گرفته تا بج... آری، بر روی امروز هم همین گفته میشه به شیوه هایی اگه که میگن خب برای پیش دکتر رفتن یا پیش پزشک رفتن الان میگن که یکی از بخش بخش‌های درمان اون برخورد پزشک میتونه باشه با بیمار و اون اعتمادی که میتونه بیمار به پزشک خوب داشته باشه یک بخشی از درمان هست و بعد مانترا درمانی وجود داشت بذارید ببینم که جای دیگری اگر پرسشی هست یا نیست خب من پرسش دیگری نمی بینم دوستان بله بهرم که نیایش آخر را هم داشته باشه من نمی دانم محضورت از نیایش آخر چیست اما برای اینکه که به هر روی با یک گونه ای به این گفتگوی امروز پایان بدیم و برای همتونم آشنا باشه باز یک عشم و یک یتاه هو رو میتونیم هر کس پیش خودش زمزمه کنه و به این شیوه به گفتگوی امروز پایان میدیم تا بار دیگه و پنجشنبه دیگر باز در خدمت شما باشیم، هم باشیم نوشتن آبزور اگر بخونم خیلی عالی. خب آبزور بلنده و به به اون زمان زیادی برای من در دفتره، یه دفتر نیایش ها دارم که هنوز به چاپ نرسه که باید به چاپ بره من فقط یک بخش کوچکی از این آبزور یا تری گذان نیایش آب و گیاهان رو. که بخشی از ترجمه شو براتون خوندم اینو میخونم و به دین شیب پایان میدم شم بهو و اشتم استی و اشتاو استی و اشتاو رحمایی ید شایی و اشتاو یشم یسنم چه وحنم چه او جس زبر چه آفری نامی ویسپ نام چه اپام ونگوی نام مزد زات نام و هو و اشم وشت او dadat vastare yanim منو yanim wachau yanim shautare ashau no zaratu ja soymęchoł Stał na ze stu jestz اکنون گاه شبانگاه از گاه عیبی سرود رم که من یه بخشی از این گاه رو هم براتون رو شناد جوره مزده و شم بو و اشتم استی مشتاو استی مشتاو احمایی یدشایی و اشتاوی شم فروران مزدی اصنو زرتو شریش وی دیو ura kešu. Ají vy lučemají a ji bi jeji a šenej ašeradve jestnaujčee, vehnajče, اشعونه اشعرت به یسنایچه <سسسن> و همایچه اشنات رایچه فرسسته یچه اهی بیس روتریمم اشعونم اشعرتون یزم ایده اهی بیگایم اشعونم اشعرتون یزم ایده توام آترم اهو رحم از داو پوترم اشعونم اشعرتون یزم فرادت ویسپام هجی آویتیم اشابنم اشهیراتوم یزمیده زنتوشتم اشابنم اشهیراتوم یزمیده مانترم تفنتم اشابنم اشهیراتوم یزمیده اشبه هوا اشتا بستی وشتا بستی اشتا احمائی هید اشتایی هشم برای همتون حارزوی آرامش تندرستی شازیوی اشازیوی دارم و تا باری دیگر درودی میگویم و بدرودی میگویم شب خوش خدا نگهدار